19 عادت ضد تنبلی ایجاد مهارتهایی مبتنی بر پروژه بهانه ای که از میان می رود. "باید فلان کار را اول انجام بدهم." گاهی تنها طرحریزی انجام یک پروژه برای انجام آن کافی نیست، زیرا که شما این عذر موجه را دارید که نمیدانید چگونه آن کار را انجام دهید. راه حل این مشکل آن است که یا پروژه را به یک نفر دیگر بسپارید و یا خودتان راه چگونگی انجام آن را پیدا کنید. معمولاً مردم تصمیم می‌گیرند طبق کرده دوم خودشان راه انجام پروژه هایشان را پیدا کنند و بدین ترتیب برای انجام هر فعالیت جدیدی باید های جدیدی هم بیاموزند. دوباره به فهرست گام به گام انجام پروژه، طی یک پروسه نظامند نگاه بیاندازید. به هر یک از موارد این فهرست نگاه کنید و از خودتان بپرسید که به دلیل اینکه نمیدانید آن کار را چگونه انجام دهید از آغاز به کار پرهیز می کنید یا خیر اگر واقعاً اینطور است میتوانید از همکارتان یا هر شخص دیگری بخواهید تا آن کار را برایتان انجام دهد تا شما مجبور به انجام آن نباشید اما اگر فکر می کنید که لازم است خودتان آن کار را انجام دهید باید مهارتهایتان را برای انجامش گسترش دهید خوشبختانه هر کاری در این دنیا توسط یک نفر دیگر با موفقیت انجام شده است. کافی است که شما پا جای پای او بگذارید و انجام صحیح آن کار را یاد بگیرید. اجرای این عادت برای ایجاد مهارتهای جدید جهت انجام فعالیتهای جدید باید این پروسه ششمرحله ای را پیگیری کنید. مرحله اول مهارت مورد نیازتان را شناسایی کنید. نخواست باید دریابید بید که دقیقا می چه چیزی را بیاموزید. برای مثال هدف شما نباید چیزی کلی مثل سخنران بهتری شدن باشد. و در عوض باید هدف دقیقی را برای خودتان تعیین کنید که هر لحظه به شما نشان دهد مهارت و کارایی شما به چه درجهی رسیده است. هدف بهتری که می برای خودتان تعیین کنید، اجرای یک سخنرانی 5 دقیقه یک گیرای ویدیویی باشد موفقیت شما در این هدف قابل سنجش است زیرا که یا موفق به ساخت این سخنرانی ویدیویی میشوید و یا در انجام آن شکست میخورید چگونگی یادگیری یک موضوع خاص شباهت زیادی به نوشتن فهرست پروژه ها دارد برای انجام این کار هم لازم است که شما تمام قدم هایی که برای یادگیری لازم است بردارید را روی یک برگه یک کاغذ یادداشت کنید از هدف نهاییتان شروع کنید و گام به گام عقب بروید تا اگر به سوال بیپاسخی برخورد کردید بتوانید با انجام تحقیقی به پاسخ مورد نیازتان برسید. مرحله دوم بر روی یک مهارت تمرکز کنید حتی اگر فهرست بلند بالایی از چیزهایی که باید بیاموزید نوشته اید بهتر است که در هر مقطع زمانی بر روی یکی از آنها تمرکز کنید شاید فهرستتان شامل مواردی از قبیل یاد گرفتن دوی ماراتون تردستی با توپ و یا سخنرانی در جمع و نواختن گیتار باشد اما مهم آن است که آموختن مهارتی را آغاز کنید که بی قابل اجرا باشد علاوه بر آن باید به تأثیری که آموختن این مهارت بر زندگی شما میگذارد نیز فکر کنید در مثالی که ذکر شد بهتر از مهارت سخنرانی در جمع را انتخاب کنید. زیرا که این مهارت منجر به پیشرفت در زندگی شغلی و حرفه‌ای شما می شود که این خود به معنای پول بیشتر برای داشتن فعالیت های مفرح بیشتر است. تمرکز بر روی آموختن یک و تنها یک مهارت سریعترین راه برای خبره شدن بر آن است. البته شما این خبرگی را یک شبه به دست نمیآورید. اما با تمرکز بر روی یک مهارت می‌توانید. در عرض هفته‌ها و ماه‌ها چیزهای مفید و بسیاری در مورد آن بیاموزید. مرحله سوم. منبعی برای آموزش این مهارت بیابید. مدل سنتی آموزش به تدریج در حال از میان رفتن است. ما اینک در جهانی که از فراوانی اطلاعات لبریز شده است زندگی می‌کنیم. تنها چیزی که شما بدان نیاز دارید میل به آموختن و دسترسی به اینترنت است. همین حالا یک گوش از جهان استاد مسلط بر مهارتی هست که شما سعی دارید آن را بیاموزید. پس تنها کار لازم پیدا کردن اوست که البته باید مایل به درمیان گذاشتن اطلاعات و تجربه هایش با شما نیز باشد. بدین ترتیب شما به آموزشی در سطح جهانی دست پیدا می کنید که به هیچ وجه در کلاس های درسی سنتی پیدا نمی شود اما از کجا می توانید به چونی منابع اطلاعاتی دست پیدا کنید؟ برای آغاز می توانید به سراغ این سایت های اینترنتی بروید Amazon.com کتاب های مرتبط با موضوع را در این سایت پیدا می کنید Google.com شما را به اطلاعات و وبلاگ‌های های مرتبط با مهارت مورد نظرتان ارجاع می دهد. Ademy.com و Skillfeed.com به کلاس های مجازی با موضوع مهارت مورد نظرتان می YouTube.com فیلم با موضوع آموزش مهارت مورد نظرتان را در این سایت پیدا می کنید. facebook.com با مراجع و استادان مهارتی که مشتاق آموختنش هستید ارتباط برقرار می کنید به هایی که در نزدیکی شما مایل به آموختن مهارت مورد نظرتان هستند ملحق میشوید جمعآوری اطلاعات مهمترین بخش این پروسه است هدف شما در اینجا به دست آوردن اطلاعات درست و گوش دادن به افراد مناسب است بهتر است روی افراد مبسطقی که جهت در اختیار گذاشتن اطلاعاتشان از شما پول می گیرند، سرمایه گذاری کنید. زیرا که منابع مجانی غالباً چندان قابل اطمینان نیستند. تورتان را تا می با وسعت بیشتری پهن کنید تا هرچه بیشتر در مورد موضوع مورد نظرتان اطلاعات کسب کنید. تنها به اطلاعاتی که از یک نفر می‌گیرید اکتفا نکنید. و با خواندن چند کتاب و مجله و پرسجو از افراد متخصص تحقیقتان را به اتمام برسانید و کاملاً بر موضوع مورد نظرتان مسلط شوید. مرحله چهارم یک برنامه گام به گام بریزید. این مرحله به مانند نوشتن فهرست پروژه گام به گام است که برای پنجمین عادت ضد تنبلی آماده کردید. هرگاه چیز جدیدی آموختید، پروسه ی آموزش کلیتان را متوقف کنید و بلا فاصله آن را اجرا کنید. به عبارت دیگر، در تله به تعویق انداختن کار به دلیل اینکه برای انجامش به اطلاعات بیشتری نیاز دارید گرفتار نشوید. به همین ترتیب، موارد جدیدی را به فهرست پروژه مهارت محفرتان اضافه کنید و با یادگیری هر کدام از این موارد دست به کار انجام دادن آن شوید. انجام این پروسه گام به گام به کار گرفتن اطلاعات تازه، سریترین راه آموختن یک مهارت تازه است. مرحله پنجم یاد داشتهایتان را با هم تلفیق کنید. بالاخره به جایی می رسید که به قدر کافی اطلاعات آموخته اید و حالا نوبت آن است که آموخته را به پروسه ساده‌ای که دنبال کردنش نیز آسان باشد تبدیل کنید. وقتی به نقطهی رسیدید که حس کردید دیگر مبانی کار را آموخته اید، آنها را ثبت و ضبط کنید تا گرفتار انجام کارهای زائد و اضافی نشوید. جمع چنین چون این مجموعه ای از یادداشت‌های قابل اجرا کار سختی نیست. کافی دفتر یادداشتتان را بیرون بکشید و قسمتی از آن را به مهارت تازه‌ای که در حال آموختنش هستید اختصاص بدهید. این یادداشت‌ها باید مواردی که همکنون گفته می‌شوند را در خود داشته باشند. ارجاعات. منابع، لینک‌های سایت‌های اینترنتی و ابزارهایی که برای آموختن مهارت مورد نظرتان می‌توانید از آنها بهره ببرید را در انتهای یادداشت‌هایتان بیاورید. طرح تفصیلی گام به گام پروسه انجام مهارت به صورت مرحله به مرحله که توسط استاد آن فن معرفی شده است را به همراه شکل‌ها و نمودارها یادداشت کنید. سوال و جواب هر سؤالی که درباره آن مهارت از ذهنتان گذشته است را به همراه پاسخی که متخصصان آن امر به شما داده اند یادداشت کنید. استراتژی پیشروی فهرستی از عاداتی که می توانید به طور روزمره دنبال کنید تا شما را رو هر روز یک قدم به تسلط بر مهارت مورد نظرتان نزدیکتر کنند، بنویسید. تلفیق اطلاعات در نظر اول کار پر به نظر می رسد، اما به نظر من بخش مهمی از این پروسه است، زیرا که به شما کمک می کند آنچه آموختید را درونی سازی کنید. با انجام این کار در میابید که با خلاصه کردن و حذف اطلاعات اضافی می‌توانید درک در از مهارت مورد نظرتان داشته باشید مرحله ششم کار روزانه در نهایت لازم است که عادت تکرار مهارت مورد نظرتان را به صورت روزانه در خود پرورش دهید می از اپلیکیشن لیفت برای پیگیری این برنامه روتین جدیدتان بهره بگیرید. تنها کاری که لازم است بکنید این است که در خود عادتی مربوط به انجام آن مهارت را پرورش دهید و بعد پیشرفتتان را پیگیری و ثبت کنید. یاد گرفتن تقریباً هر کاری در این دنیا امکان پذیر است. تنها چالش پیش روی شما همانا پیدا کردن منبع اطلاعاتی موسق و سپس پرورش عادت تکرار روزانه آن مهارت است. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی آموختن آهسته و پیوسته مهارت‌های جدید، به کتاب نخستین 20 ساعت اثر جاشکاف مراجعه کنید.